سومین و درت دائمت و داری نجمه آمه و و رحمتی یا از که صاحب و در این ای که از ایشون مجموعه خبر این مجموعه قرائمی که ایشون در طول تاریخ حدیث شیعه چه اردشی داره هم کلام اینشان هم قرین و نقد او به اصطلاح مطالبی رو از کردیم بلیه قرائم رو که ایشون نقده فرمیدن بخونیم از کردن در ایشون در اینجا 21 قرینه رو کردن تو از تو که در این چاپی که از وسای شده شماره گذاری نشده این شماره گذاری از بنده اینه که شما شماره شما قولن بیسی ایکیست شماره ها موافقت و روده به اگر حدیث موافقه با احتیاط باشه همه میشه من به مناسبت های تابعا چون این نسبت بین امارات و اصول کاملا بازه نبود حالان این حرف در کلمات هست مرموم شیف. چون این بحث و تحقیل که امارات با اصول اصولاً داره دروش رن بذارت باهند اگر رو جفت شد این از باقر اماریتی اگر از داناتو مطابقه با یاد باشون این دوتا رو نباید با هم بیگه قیاسه کنیم بلکه سابقاً گذشت که مرموم شیخ انساری معتقلن نپرد اصل اگر موافقه با همه جاری نمیشه اگر دو تا اصل باشن که نتیجهش شنن یکی باشه یکی جاری میشه یکی نمیشه توضیحاتی که بحث حصول جاش اینجا نیست الان این چون مرمونه هم. صاحب وسایل دنبال قرینه این رو به عنوان قرینه دهید کردن دلید و الان در وقت حصول فعلی خبر یک نکته داره اصل عملی نکته دیگری داره اصلا نکته اصل عملی داره از خودیه خبریه و این موافقت احتیاط داره موافقت احتیاط تصیری در این این بحث که موافقت با احتیاط جزب پرازن هست این یک شکل دیگری در صابر مطرح شده خیلی قدیمه یعنی در اصول قدیم ما هم آمده اهل سنت هم داره مفصل اهل من هم داره و خلاصه اینه که ما اگر اصالتال احتیاط را قبول کردیم خود خبری که مطابق با اصالتال احتیاط را جمع میشه و به عکسش هم ادهی باره بوده اینکه نه به اگر دو تا خدم راشتیم پردو تا تعارض می یکیش مطابره با احتیاط یکیش غیر مطابره غیر مطابره احتیاط مقدم میشه اونی که خلافه تقریب این بحث از حاضر به این صورت بود که آیا روایتی که ناقله مقدمه یا روایتی که مقدره حدیث ناقل این بحثشون اینجوری بود که آیا ناقل مقدمه یا مقدر مراقشون از ناقل است که مخالف اصله مقدر حدیثی که مطابق اصله این اصطلاحی بود در اون زمان الان ما ماروش کار نمی کنه. خیلی رو هم نه در بحث اصلاح وجیه نه در بحث تاروز خیلی الان اصول ما رو این مانور نمیدن چون بحث وجیه اگر تمام شد میخواد مناوله احتیاط باشه نباشه خیلی از وشی نباشه. و در بحث تاروزم چون که در موجهات نیست قبولش نمی این یکی و سالی هم. اصولا این مسئله فی نفسه باید بررسی بشه که حسن احتیاط چیجوری از میکنه یا نه یعنی دلیده برشت روشنگی دارد مردم صاحب رساید قدس الله نصیر و فاقند در موارد شبه رجوع به میکنه از که این چرا را محروف به این اخبارین در شبهات تحریمیه به احتیاط میکنه اما ادهی از اخبارین مطلقت به احتیاط میکنه چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه مطالب چیشونی که فهمید میشه چیلی شه انشاءالله تعالی تو بحث اصول تو بحث احتیاط مفرس میشین و صاحب وسائل قضا سالله همه در کتاب قضا این یکی از موارد اختلاف بین ترکیب وسائل با جامال حادیث مرموم آقای گروجلی این بحث رو روایت احتیاط توی مقدمه عبودن به اصطلاح این روز جلیه اصطلاح بعد به جلی سر مقدمه جامال احادیت در مقدمه عبا مقدمات عبادات عبا مقدمه ایشون بخص براقص هم اونجا بوردن روایات احتیاط هم اونجا بوده مطمئن های گروه چه اما سال بسال روایات احتیاط رو توی بحث قضا بوردن و این بابی قرار داده این که ایشون ما لما عرفت القضا همون بابی در باب قضا که ایشون برای در تو به اختیار جعل کرده 64 روایت در اون باب ذکر شده مفصل با مفصل و ما هر تصوفا در بحث دور حسابه تمام اون روایتو گانه گانه و دعات کردیم دلات برای این مطلبایی نمی کنه حالا ان شاء الله به وقتش خواهد آمد به هر چون معروف بوده که اختیار حسن و عقلا و عقلا ایشون هم الان هم معروف که الان لاره بفی خسنده شکل که خسن از تنبیات افتیار لاره بفی خسنده افتیار اقلن و شرقن ما ارز کردیم نه اقل شکل روشن و شرقن خاصی دارد از که افتیارش اینجا نیست به هر حال مطابقت با افتیار رو ایشون که از شواهد و قرائن و خبر گرفتن به خاطر روایاتی که در باب به اصطلاح قلب افتیار هست و تو مثل مرمون الله محمد امین استرابادی در اختار فواز مدنیه اصولا اینه چند بار که تمام ارحاس اصول رو باطل میدونه دونه به نحباب علال محرام توضیحاتی که عرض کردیم عبارت ایشنا رو خونجیم تکرار مقدر رو ایشون تنها راه رو اینطور می دونه که ما مکلف به کتاب و سنت هستیم به شرطی که هم کتاب و هم سنت از راه عهده به ترسیر من ملخص پکاریشان با بگن البته این تونگیه ایشان شد در کلمات مثل سال و و بسالتان ببینید تصور رو کنید ایشون میتونم ما مکلطیم به کتاب و سنت اونم به این شرط که هر دو چون توی ذهب نموه که کتاب نه مرمول ملامده سنت هم میگه خوب دقت رو کنید. به شرطی که هر دو یعنی هم کتاب و هم سنت توسط رواهات احلبه ترسیر بشه خلاصه رأی خوب ذهنیت مفهوم الله محمد امین استرابادی ما مکلف به کتاب و سنت هستیم و ما در بحث مقدمات علم تنبیحات خاص متعرض شد اصولی ها با این مخالفت کردند میگن نمیشه احکام رو تغییر بکنه خب اگر واقعی از هر راهی باشه ما از همین مصلحی که الله محمد امین استرابادی اثر قواعد اصولی میشه اثباتش کرد اینطوری نیست که اصولی ها حمله کردن. گفتن باطل فیلنسه نه میشه اثباتش کرد مشکل ندارد امه که دلیل برش نداریم ایلا میشه اثباتش این اختلاف ما یک حد وسطی ما این اخباری ها و اصولی ها گرفتیم الانیه حالا خوب تصور بکنید ایشون میگه وظیفه ما رجوع به کتاب و سنت به شرطی که هر دو هم کتاب و هم سنت توسط احلبه تفسیر بشه روشن شد و در خیل این صورت وظیفه ما احتیاط دیگه نه به استرساق برمیگرده گرده نه به اجماع اصحاب نه به اصول عملی روشن شد ایشان کل اصولی که ایشان محبون مالا محمدنی چون اصول ما با سر. همه افاس و اصول و تقنیم از اول تا آخر رو گرده همه میکنه خلاصه تفکرش اینه این خلاصه تفکری که بنیان گذاره تفکر اخباری، فقط به بعدی یا بعدی‌ها شاید این تنبی نباشد. حالا این این خلاصه کل مکتب و اصولی مرحوم علامه محمد امین این مثلا ایشون اینجا موافقت احتیاج رو قرینه گرفته. من بخوام هر از وقت یک متن در ساحل و وسائل می‌خونیم، این رو شواهدش رو در افکار شیعه، در افکار سنی معرب میکنیم مرحوم علامه محمد امین اسراغادی تفکرش خلاصش اینه. ما مهموره به کتاب و سنط... هر حکمی که از راه کتاب و سنت نباشه اعتبار نداره ولو به اجماع از این اعتبار نداره ولی زام اصولی ها اشرای کردن که اگر ما واقعا علم پیدا کنیم که این حکم اهل بیته ولو از راه کتاب و سنت نباشه خب خود جهازه که علم نداره اون میخواست این علم حجیت نداره این همون نزاع معروف که محروف شیخ انسالی و بعد محروف استاد آ و مرمونها اینی آهازی ها دیگران حجیت علم رو ذاتی میدونن اینی که از مورد برد بر ملا علی استرابادی و ما از که این حق اینه که حجیت علم ذاتی نیست مختلافاً به مرمومشه تاکیقایی و مرموم استاد و مرموم آهازیان و بفاقند محقق اسفحانی حق رو با محقق اسفحانی میدونیم که حجیت علم ذاتی نیست این یک مطلب پس هر با معمولان محمدان است که امکان داره این مطلب بیشان امکان، اون هم امکان نداره نه امکان داره، اصولاً با به بابر مطمئن شدن در درده اخواری نه امکان داره، هر پیشون امکان داره هر با محقیق اصلاح نیست که امکان داره حضایس محقیق اصلاح نگفته قبول نکرده، اما روی این معنا ما قائل هستیم الان هم این مرموم مرموی ایشون در مخالف ترخواب دقیقا اجماع تو هست که مخالف همون دقیقا تو ذهن هم ایشان نمیاد الان پس بنابراین لیکن در غیر این صورت اگر از کتاب و سنت نبود حالا اجماع باشه چی مخواد باشه مهم نیز ها باشه در غیر کتاب و سنت حتما باید احتیاط کرد دیگه شبات و وجوبی و ندارد کردیم اخباری ها کردیم هاشون، خیلی هاشون محتقص هستن که در ثبات وجوبیه احتیاط واجب نیست برای جاری میشه لکن مثل ایشون و ادهیشون ادهی ای کمیشون رو دارد که در شواهد ها مطلقا احتیاط جاری میشه و مرادشون هم از شبه ها هر چیزی که از کتاب و سنت محسر از طریق اقلبهی نباشه این دیگه خیلی راحت کل فقه راحت کردن با این اصل عملی شد. محصه پنگ پونزهام پس روشن شد که اگر عدله حجی تمام بشه انصافه نیازی به نیست و مجرد محاقت احتیار به این معنی که گفته شده شاید یک احتیاط وجودی درست بکنه اما فتوه مشکله و منها قرنه پونزه هم اجتماع قرنه فساعدن به مازوکی خب معلوم این نقطه عقلی داره اگر ما ده تا قرین ذکر کردیم اگر 5 تا شود خب شواهد بیشتر از 6 تا شود بیشتر از 7 نمونه خب امر عقلی صرف به حجیت نداره و من ها موافقت اول دلیل به عقلی قطعی و مسلمات عقلی مثلا روایات این در باب رؤیت خداست که انسان خدا رو می‌بینه بگیم این روایات قطعاً واصل چون خدا قابل رؤیتی نیست و من ها موافقت اول اجماع مسلمین مراد همون معنای دقیق که لا تشرب امتی همه ها مثلا دید دید و مثلا روایتی بیاد که درست کنه که نماز 6 تا مثلا در خوب قطعاً مخالفت داره با قبولی سقطاً میشه و من ها موافقت اول اجماع امامیه مراد از اجماع امامیه ظاهراً بعضی از روایاتی است که فوز به بین اصحاب است که ان المجمع علی داره این روایت باشه البته اون روایت موافقه با اجماع در وقت تا در وقت اصلاح و جیت اصلاحشون تعمیم دادن و منها وقت دهت اجماع چون اخیرا متعبود شدید دیگه توضیح ندید بله ما از خیردیم که در مکتب بغداد این بحث مطرح شد که روایت رو با اجماع قبول بکنن و چون توضیح هاش گذشت بعضی ها قبول کردن بعضی ها نکردن بعضی ها تفسیح قاید شدن دیگه توضیحیم نشون خیلی طور و منها موافقت بود مشهور بین امامیه این موافقت مشهور الان هم انسر در تعارض آمده نه در قدیه خود ما شهره بین اصحابه و ده اشار در اشار زن نادر این در تعارضه و ارز کردیم اصحاب ما که قاید شدند ترجیح که مرتبه ترجیح تقریبا به سوایت رسمی در از خواب ما از قبل هشتون به بعده یکی از ماردگی ها را شهرت میرشتن آن تا همه نه یه چیزی الان خیلی مشهوره که این حدیث آمان ابن نهندره مقبوله مقبوله آمان ابن همه قبولش کرد نه اینطور نیست مرموم محقق میره روات زعیفه صاحب ماله میره روات زعیفه تحبیر میکنه علایه حاله اگر کسی خود قصر رو کنید ترجیح به شغلت رو قبول کرد به خاطر تعبوده این که یک روایتی مشهور باشه مقدم است در روایت دیگه این به خاطر تعبوده و دلیل تعبودشن همین روایت رو ما رو نهند داره هست بین از و ده اشعال و نادیه این دلیلشه و تقضیح هم از کرد مرحوم روایت همه همه قبول نکردن و رضایشون این مرجح هم قبول ندارن در رفعی کلافند مشهور ترجیح به شرعت رو قبول نمی کنن. چون میگن روایتش از قائلش همینه. اینه قاعده فنیش هم که این ترجیح با تعبودی باشه و راجب این از این مطلب موافقت با مشهور این در چیز گذاشته در ممهت اصطلاح تا بله فیما برد آمدن گفتن اگر یک مطلبی ولو روایت هم نبود چیزایی تو روایت داشته مشهور قدم های اصحاب قبول بکنن موقع قبول میکنیم که از کردن مرموم های برژه یعنی تحریم به اصول متلقات مثلا در فقه در مقنه شیخ مفید در مقنه شیخ صدوق فتواهی بود که مشکل این بودن ولو روایت نداشته باشه ما شون من ما بود یکی مبنایی داشتن که قدمای اصحاب فتواهاشون عین نصوص بود این عین نصوص که ما میگیم این اصول متلقات روایات اینها از اصولی بود از قواعدی بود یعنی از مسادری بود که متلقات از احل بیت بود ولو به ما نرسیده باشه این مثلا ارسن و این مطلب الان ما در کذبستان مثلا میگه این مشهور یا بهش میگن شهرت بین خودم ها مثلا فتوا همچین اگر روایت با شعرت خودم باشه اینشون شعرت اینکه مرادش روایت بسید بناشون بینه که حتی اگر فتواه بین خودم مشهور باشه قبول بکنی این نقطه ای و از این مطلب رو ولو الان متأثیرین و معهدهی میفرماید لیکن خود فتواهش خوب بکنید ما به اصطلاح این سه تا شهرت داریم شهرت روایی شهرت روایی برای اولین بار در مصادر ما در روایت اومدن آمد دو شهرت فتوایی داریم این شهرت فتوا این شهرت فتوا اگر بین متقدمین باشه <تصفيق> و این ها. ارز کردیم از بر جلی قبول دارم خود دقیق رو کنیم ارز کردیم ریشه این بحث و اخباری ها گفتن ولو ما اسم اسمهای بزیرده میبینیم چونکه اصلش رومولا محمد امین استرابادی داره چند بار توضیح دارد. قبل از من رومولا محمد امین استرابادی من نیدم اگرم باشه من نیدم و من رومولا محمد امین استرابادی یک فصلی داره که به شدت به اجماع میتازه ان علماء اینها زیاد به اجماع تمسک می کنن ایشون هم حد بحث که اصول رو مورد ساخت وساز قرار بده یکی از ساخت وسازهای خیلی زیاد ایشان که حتی الان هم در تشارای مثل بحره کیشی هستن یکی یعنی از طلباحثو کلی ساخت وساز رو اجماع رو اسم خیلی ساخت وساز می کنه اجماع رو به خصوص که اجماع دلیل نزد مرحوم علامه محمدی نستواش قواعد مدنیه ایشون یه بر اجماع حجت نیست لکن بعضی از مواردش حجت هست. اول من تنبهل داره ایشانه وقتی که اون جایی که قدمای اصحاب فتوا داره این اول ایشان داره اگر قدمای اصحاب فتوا داره این حجیت داره آی بر این را هم برگوه آقای بروجیدی فرم این دوتا یک حجت اصلا شهرت فتوایی یا اجما در مترخیلی این از زمان الله مطرح شده شهادت فتوایی در بین متقین بعد از شش و دوسی چارمی به اصطلاح عملی به این معنا که،, که ایشون هم بردار موافقت بوده مشهور به امامیه به این, این معنا که روایت باشه مراد در عمل زنججا فتوا روایت باخود ضعیف باشه, باشه لکن مشهور قدما مخصوصا به اون روایت فتوا داده باشه این اصلاح استباهتش میگن عملی استباهتشونی شده شبهت عملی و مرادشون از عمل فتباه و نه عمل خارجی مرادشون فتباه این مطلب بعد از علامه درست شده این مطلب. یعنی از زمان شهید اول و شهید ثانی و توضیحشم عرض کردید چون علمای ما به یک مشکل برخوردن طب تقسیم علامه این حدیث ضعیف بود مثلا از اون رو بجداده میگن خودما عمل کردن اما در این حرف رو که اگر این روایت مطابق باشه با مشهور بین قدما نه داره متاخیرین این روایت بجته یکی از قرآنیست که روایت رو بجته پس کلمه موافقه رول مشهور بین الامامیه ایشون فرمزن ما مر مر یعنی منع نفس دلیل ما روایت و که اشکال بیشان وارده ما روایتی در تمام اقسام شهرت نداریم قدقت دقت کنیم اون چی که روایه در اخسام شهره فقط حدیث عمر ابن هنزل است یه حدیث مرکوی زرارمیون خیلی بیتونه عرض شانه از محسوشان میبینید مقبوله عمر ابن هنزله دقیق کنید اونم در تاروزه ایشون که در سال بستایه خیلی لما مهد انسازت حرف ایشان قابل قبول نیست بله در خیلی رواب تعارض یک فتوای مشهور بین قدم ها که دلیل نداشته باشه گفتن رجت نیم اما این وقتی بیمان نحنفی نداره از کلیم ما اینو الان مثلا توی درستان و توی بحثان احتیال میه به اسمهای بروژی های بروژی بیفرمون لیکن مده این کلام محوم مولا محمد امین استرابادی است در قرن دهم، ده هم در هم در تیب زمانهای بروژی نداره دو دو تا شد سه اگر قطعای قدما با روایت باشه این اصلا قبل از مولا محمد امین از زمان شهید اولین ها شروع میشه یه شروع میشه و اصطلاح هم معروف میشه به جابریت و کاسریت این جابریت و کاسریت ما این زمانه میگفتن که اگر عمل قدما باشه جابر زرفه و عمل نکنن ولی روایت رواید باشه کاسر جابریت و کاسریت این دوتا ستا چهارم، شهرت فتوایی بدون دلیل که غالبا بعد از شیخ طوسی تا زمان علامه است که توضیحاش هم دارید بعد از شیخ تا زمان علامه یک دست خطا به این علما مشهور میشه روایت هم نذار این رو علامه گفت قائل به این علامه است مشهور از با واقع زده اگر معارض نباشه بجون مطلقاً نه لیکن بعد از علامه در کتب و اصول معروف نیست است حجت نیست مشهور اینه که حجت نیست ادهی موافقه با علامه قبول کردن اما مشهور و معروف بعد از علامه اینه که این حجت نیست پس این مثلی که ایشون فرمودن قابل اعتماد نیست چون ما مغربه در از خصوص تارزی و منها موافقه تو لفت با جماعت من علماء علماء امامی اینم روشن شد اینم الحمدلله شد موافقت با جماعتی از خواه ها اگر روایت باشه اعتراف کنیم جایی که قدما باشه این قبول ترده. این یک دو دقت کنید یک خطا مال قدما باشه دو قدما اسناد به روایت خطا داده که اصطلاحاً من اسمش شهرت استنادی در مقابل شهرت تطابقی یعنی اگر یک روایتی بود زهیر خستند بود قدم هم فتوا بشتدن اما قدم ها اصلا را در ذکر نکردن مدل بود به کتاب حتی مثلا گشتیم توی اون سر دنیا پیدا کردیم اصلا قدم این روایتی نگوردن اما فتوا با این هست این را هم قبول نکردن اسطلاح گذاشتن شهرت تطابقی شهرة تطابقی حجت نیست، آنی که حجت شهرت استنادی یعنی قدمای ما استنادن الی روایت فتو داده باشه. این شاه بی 20 21 و منهاکن راوی غیر مطهمن در کل که این جزء قرائت دیگری است که اگر راوی در این روایت به خصوص اونایی که از قونیه در فضل راهبه نرو کنه که گفته و منها در باب روایت العامل نصوص علی لعنه و معجزات است. بعد مرحوم سال و سال می توانیم برای قرائن و کسیر از غیر و زاله. راست خیلی از قرائن سالشون ذکر نکردن. یکی این که مثلا یکی از عینمه متاخر حدیثی داشته باشن یکی این که اون حدیث جزء عوادیس عرض باشه چیزیز که ایشون ذکر نکرد یکی این که مشایخ فند به اون قبول کرد الا آخری هست و قرائن زیادتر از می هست نکته اساسی در اینجا در عبارت سال و سال چیه؟ این مطالبی که ایشون بیستوی قرینه ذکر کردن الان کتاب عده پیش من رو بعد نگاه بکنیم مرهوم تا شیخ توسی هم در عده ایشون هم در بام خبر قرائنی دید بسی همیشون مثل خبر مطابق با کتاب باشه همیشون قرائن تو نبینه عددیشون نبیستی کمتر شیخ توسی در عده داره اون نکته اصلی در اینجا. اینجاست صحه وسایل میگه به ادا تأملت وجدت کل حدیث من احادیث هادل کرام کتاب به دترانه کسیره. یعنی تمام رواحتی که من در وسایل آوردم رزدم با مقطعاتش و تکرارشی و پنج دلتن هم اینطور ازه کل رواحت وسایل. تمام این رواحتی که آوردم رو بعضیهاش هرچقدر نیشذیه ترین از یک است. اصلا اکثر این نرسم می‌چونی. این این رو که صاحب و صاحب اینجا داره نه این مطلب در قده شیخ توسی حالا ما خیلیم براتون برای تعمالی بشه مرحوم شیخ توسی در بحث حجیت خبر واحد از خدمیشون بحث حجیت خبر واحد رو قبل از حتی برنده بحث عوامر ایشون در حال چاپی که الان این چافه جاییده شد دو جلدیست صفحه سال سی و ایشون داره ما انکرتم ان یکون الذین اشرتم الیهم لم عملو بها دیل اخوار و مجرده ها چرا نمیگیم؟ بل انما عملوا بها لقراریم یه عجیب اقتر نسبه ها دلتم علی صحت ها و لعجل ها بها این دقیقا تناب صاحب ساحب دقیقی عدیسی ایشون میگه قیل التي تکترون بالخبر مثل الله علا صحتیه اشیاء مخصوصه نرکل و ما برسنن اصلا ادهی القرآننیشون موردن منر کتاب از سنه والا اجماع و توافض قصد همه قرآننی که و نحن نعلم انهو ليس في جميع المسائل التي استعملوا فی ها اخبار آهان استعملو اخبار لعنه ها اکثر من انتقصا موجوده فی کتبه و تصانیه فیم ليس لعنه ها لیسه فی جمعه استدلال به قرآن لعدم ذکر داله که پیسری و فتح و او دلیلی و معنی ولا فستوه الى آخری پس نقطه اختلاف صاحب و صاحب با مروم شیخ که خب همینم درسته تمام سر روحجیخ خبر هم یک کلمه هست شیخ توسی که قارم میشه که ما به اخبار عمل میکنیم بلا قرائن نمیم. این معنای حجیه اصلا معنای حجیه ده خبره. و صاحب وسایل صاحب که میگه تمام این اخباری که من در کتاب قرائن داره قرائن کسیده معنای شیخ که هجه دهیم. اصلا معنای عدم و حجیه دهیم؟ روشن شد؟ معنای حجیه اصلا عدم و حجیه دهیم. پس مرحوم صاحب و صاحب در حقیقت میخوام بگم که خبر واحد خود نیست چرا؟ چون خیلی اخبار داریم همه اخباری که داریم تمام قرینه دارن بی قرینه ذکر مکرد و شیق سوسی میخواید نقل خیلی اخبار داریم که قرنی ای هم ندارن اینم واجه به این خایده ای که مرحوم صاحب وسایل رو بله بله مشکل دیگه که ایشون سبوت هم آورده و بله، یک مشکل دیگه منون سال و سال خب خلاصه ی نظری که میشه دارم چون ایشون یک فصل دیگه هم دارن اون فصله ایشون هم ما سریع هم بخونیم چون دیگه معظم هر کاریشون این فصلی که ایشون بردارن با عنوان پاعده تاسعه دلیل آوردن خلاصه یه فصله این هم دلیل برای این که روایاتی که در کتور مشهوره حجته کتب عربه و غیرها و اصطلاح علامه درست نیست که حدیث روایات ما رو به چهار قسم کرده مثلا کتاب کافی رو به چهار قسم کرده صحیح و حسن و ضعیف و موسط این اصطلاح درست نیست این خلاصه این فارده تاسه ایشون در دیگه شماره گذاری فرمان خود ایشون شماره گذاری برمزن 22 دلیل آوردن از به تو مرا خودشون نیست همیشه از اخباریار گرفتن مجموعه میراث علمی اخباری هاست از همون صفحه 252 این چاپی که دست من هست تا 266، 66، 13 صفحه 22 دلیل آوردن اسانی ولی اشروع چون دیگه اثب می‌دهد برای اینکه این روایات کتب این که کتاب اربا اما اقامه دلیل کردن برای اینکه صحیح هست تو قابل اعتماد و این اصطلاح علامه درست نیست این 22 دلیل که ایشون دارن این ادله ای که ایشون دارن خودشون هم میگن مجموعه از خطبه اخباری گرفتهن بله ایشون خودش بعضی‌ها رو ذکر کرده اکثر هادی وجود بعضو محققین نظر متأخرین خودشون اشاره فرمودن و امکان بعضی‌ها یون که در مناقشه تو خودشون خود که این ادله کامی کامل ف مجموعه‌ها لایون رد هو اندلینسا. بله اگر ایشون مجموعه رو یک دلیل قرار دادن بهتر بود، خود بس دلیل دلیل‌هایی که ایشون اوردند نگاه بکنی، تقریبا همش دنبال همون نکته‌ای است که ما بیشتر از این تغییر به عنوان تحلیل فیزیکی کردیم. این هم این ایشو مخاطب이야 اصحاب زهرت پیشدار چه اینکران شلون این کردن کتاب بوده مصادر بوده چه این بوده این چیزهایی که الان در این کتاب مشهوره بمارسیده مثل کتاب حسن سعید حسین معرودیان هم معتبر معتبر بودنش یک چیزه ثابت بودنش چیز دیگه‌ست ایشو مخاطب یه ثابت هم هست اون چه که ما الان اشکار داریم ثبوتش که قطعاً نمیشه اثبات کرد که دون اثبات و خط و خطا اعتبارش هم مشکل داره چه به ثبوتش این اختلاص ما با مرموم ساحب و سائل قدسان لاسره ایشون بیست و دلیل رو بردن آره بیه خودتون مراجعه چون خیلی طولانیه من فقط به مقدار اجمال یکی علم نائل من به تواتر و اخبار محروفه که دعب قدم و اصحاب نافی مدت انتذید و علا سراس و حسنه زبط العهادیز راسته این مثلا زحمت کشیدن خونه دل خوردن وکه این این طور نیست که تمام این 300 سال نتیجهش اینه که تمام اینا که در کتب هست صحیحه این نیست این نتیجه نیست یعنی به عبارت اون اخلاق در این مدت 300 سال اجتهاد و نظر و قبول و این خبر قبول بکنه که قبول بکنه که نکنه که رد بکنی این بوده اینطور نیست که تمام خواب ما اینو قبول کرد اگر بود که جو بحث نبود این تصوری که ایشون فرضن زحمات اینها جای شرف نیست خون دل خوردن اصلا عبره قابل دیگه واضی این بحث بشین این اصطلاح علامه اکر میکنه اینا مقدمات نداره اصطلاح علامه جدید قرن هشتمه که واضی میگه جوی بحث نداره که اصطلاح علامه نمیخواد صاحب واسطه این قله ادله رو بشه چنین این وجدانیه اصطلاح علامه جدید این وجدانیه قبل از علامه ما از قرن دوم یه تعریف و تذویر از ها شروع میشه اصلا حدیث از ها از اول شروع میشه بذره رویه قرنه دوم به اوج میرسه بعد میآش صفحه سوم رواجه چه از ها شروع میشه پس میراث های علمی ما از قرن دوم و سوم و چهارم و پنجا مثل زمان شیخ توسی عمده میراث های ما این زمانه و ششم و هفتم و هشتم یک اصطلاحی در قرن هشتم آمده بیشتر از قرن اول میگه اون که خیلی واسونه این اصطلاح نمی‌تونه برای قرم دوم و کارساز باشه این شکل به نظر من واضح احتیاج بیر مقدمات ندار این قسمتیشان این مطلبی که شوندم این اصطلاح نمی‌تونه برای حدیث شیعه کارساز باشه لذا احس کردیم حتی فقهای بزرگ شیل اول و ثانی بلاز علامه گفتن با اگه حدیث ضعیف هم باشه اصحاب امرتان قبولی شو کنیم این اصطلاح کارساز نیست از یه قسمت کلام ایشان اصطلاح. نیست. که ایش این استلاح کنلن کارساز نیسته نمیده اون راهایی که ایشون میگفته این درست. اما هرچی الان در این کتب عربعه و غیره ها مثل ایلال شرایع رسیده اون هم درسته این درسته نیست یعنی این مشکل کاری نیست مقدمه دوم، قد علم به وجود اصول صحیحه ثابته کان از مرجت طائفه ببینید این مطلب جایی بحث نداره پس این کتاب حریض حتی گفته شده به امام صادق عرض شده این همه گفتی میعرض به کتاب حریض به صلاح و قال الله علیه پس نماز بخن. ببینید وجود کتاب حریض که یکی از بقالیش اصول صحیحه ثابت ثابتت اینجای بحث وجود بوجود که مدبسی توی نداره مرگه اصحاب بود در باب صلاح اونه که محل بسته الان ما روایاتی رو پیدا بکنیم کلینی از کتاب حدیز نرم بکنه صدور نرم بکنه صدور نرم بکنه کلینی نرم این رو بکنه مشکل کار اینه اینه که آین مراجعه نکره اخواری ها مشکل کار اینه همین کتاب بعد هم یه قسمت هایی از کتاب حدیز معارض داره از رو احمدز رو غیره اون رو چکار بکنیم کتاب الحج ماویه ابن عمار یک کتاب بسیار معروف بلا اشکاله نداره اما ما الان اختلاف نقل داریم مثلا حتی دو واقعیه از این کتاب نغمن که شیعه نقل نکرده این چه که این مشکل کار اینه اگر این مطلبی که ایشون تصور کردن که اصول صحیحه بوده همه از از این اصول صحیحه اون که جای بحثه جای خلاف. اختلاف اصلا فقط امجزه مساده از دنبال کرد، اصفان دنبالی نیست این واقع نیست حالا علتش چی بوده اختلاف نسخه بوده یه فقیل به خاطر یک جد رو قبول نمی کرده اونا شما نمی جونید. اونی که الان ما می این نیست بعد مقدمه سه و مقتضای حکمت الهی و شفقت رسول علیه امه که امه نسبت با آیندگان هم فکری کرده باشن درسته این مدل ما بحث نهارم. فصلا خدای تعالی لا نخر من كل فرقه من اصحابی اتفاقا مصدی خود قران به این مثلا تاکید کرده راست ولی روقام مدارک جوادی نه فقط منفعل اسباب به تعبیری کسانی که فارس در شهر در شهر خراسان هستند و مکه مشاورت نشدن به رسول در کوفه هستند در جای دیگه هستند به مکه خداوند متعال اینا مواد برای یاد بگیرن که احکام الهی بدون چه برای برای آینده ها اصل مطلب ایشان درسته بس دیگه چیز دیگه از این دنبالش داره علا حدیث کسیره داله علا همه همه همه رو به کتاب حدیث چرا؟ اصلا ما ارز کردیم شواهد قطعی تاریخ ما نشون میده که در از همون افتدا بین صحابه از زمان خود رسول الله امیع المؤمنی ممتاز بوده به کتاب حدیث اصلا این یک نکته یه کار نداریم بحث امامت و وساییت امامت اصولا در میان صحابه امیرمون یک چهره علمی و فرهنگیه یعنی این رو میدونستن که ضبط کلمات پیغمبر قیل از قرآن کریم که به عنوان تفسیر یا سننه این سر بقا این شریعته اصلا سر خاتمیت این شریعت اینه اگر سنن رسول الله به ما نمیرسید که اصلا امکانه شریعت خاتم باشه خاتمیت و سر این که این شریعت میتونه تا آخر زمان تا اوز قیامت تا همه افاضه داشت در جمیع زمانها در جمیع مکانها کارگزار باشه نکشهش همینه ولی ذا این نوشتن از سین به سینشو خراب میشه دیگه یه چیزی هم میکنی یه چیزی عملو امیر الوهلی اکثر امیر عثمان در خصوص شیعه نه در خصوص سنی مسند بنویشه بس مسند قرارداد ازه هر دو از اون سره بگی من, من روز منزل من بود روز من علی علی سلام اونجا بود یه پوستی با خودشون از اهمیه سوال میپرس پیغمر می نرس تا اون پوست رو پر کرده در سوالو جا یعنی در این که امیرالمومنین در زمان رسول الله از خود ایشان شری داد این در شبهه ای نیست روایت زیاد دارن مثلا من نمیخوام وارد بحث بشم بر مختلفه کتاب جرح جامعه هزار چی بوده الی آخری و رساله بیادس بوده رساله بوده رسائل مختلف پس این مثلا اختصاص به اعمه نداره از امیر مومن انسان علیه راست درسته و انصافات هم اعمه ترکیب داشتن و یکی از مزایای شیعه همین کتاب هستند این درسته اینجا بحث نیست این من کلام در اون چیزی که الان دست ما رسیده انده من کلام در این این سوار ایشون دیگه هم من نمیخونن چون خیلی زیاده ایشان الان من فقط اشاره اگه اشاره. این نعت فلا آهادیشونو کانو موجودن فی کتب الجماعه لذی نعج معادل تحسیل میشه. معمولاً و ما خیلی یمان دادن چند جهتاره ابرازشون کنیم. این نیست اول از از اصحاب الجماعه کتاب می‌زنم. و اصولاً ما را از اصحابشون اتفاقهای دلگرگان های بزرگ روایت نماییم. ان نقول لو لم و كتبنا ماخوذه من الاصول بله لازم اکثر اگر این احادیس ما ریشه داشته باشه بالا اکثر احادیس ما قابل اعتماد نباشه شبیه بحث انسداد درسته ما قبول داریم اجمالا قبول داریم اما بالاتر از این ما میگیم با شواهد میتونیم اثبات حجیت بعضی بکنیم اما همه نه منها بعض هشتمی رئیس تا اففی کتاب الاخبار و غیره من علما اینا بله الا وقت اصطلاح حدوث اصطلاح جدید ما بیا از علمای ما به این اصطلاح تنظیر نکرد درست این مطلبیشون درست تا سه ما تقدم منشه شیخ و صدوق و کلینی به, به سه حتها در این کتب از کردیم صدوق و کلینی درسته اما شیخ نه شیخ نگفته کمان تمام حدیثایی اصلا ایشون شیخ کتابش کتاب جمعه گذیرشی نیست مسئله نهان خیلی از این بزرگانی که ما رواز داریم اهل دروغ نبودن اهل افترال نبودن راست خوب اده هم چونشون دروغو بودن متهم هستن مثل محمد ابن سلام که احاضستن زیاد داره شما همه رو یک نباق بگید درسته اون مشکل داره امسه محمد ابن سلام متهم به دروغ معلوم نیست یازدهم، هم طریقه قدما موجب علمه این بحث که این رو من سابقه هم اشاره کردم قدمای اصحاب ما به طور کلی اعتمادشون رو نوشتار ها بیشتر بود تا روی احالیت شفاهی راست این درست و طبعا نوشتاری که قابل قبول باشه و مشغول باشه و نسخه کسی داشته باشه بیشتر قابل اعتمادت حدیث شفاهی این هستی ای؟ این نمیشه این این مطلب درسته و لذا اگر ما به این معنا بگیم طریقه اصحاب ما موجب علمه غیر از طریق اهل ساند علم به این معنا لکن از کاری که اوقات وقتی ما بگیم طریقه اصحاب ما مونج به ilmu نه طریق اهل اشتباه دقت اشتباه نشه اشتباهی شده چرا چون اصحاب ما احکام دینی و از واه اهل بیت گرفتن با امام حدیث ثقلین و حدیث غدی و اینها اهل سنت مثلا زمان مالک مالک و امام خالد مقایسه کردن گرفتن با اینکه مالک انفلان انفلان انفلان فلان رسول الله بحث یعنی شیعه اعتماد کردون کلمات احلبه یه قاعده کلامی، اصول دین سنیه ها اعتماد کردون بیه قاعده اصول فقر برقی این دو سا فکر روشنه گفتن که قاعده کلامی است علم آور اونجوهی که قاعده اصولی زن آور روشن شد این که طریق قدام و موجبتون علم دو تا اصطلاح در یک اصطلاح یه دفعه اینه که اصولاً طریقه شیعه علم آغره چرا؟ چون شیعه آمدن احکام رو از امام صادق گرفتن که به روایات کثیره عبیده آیات و قرآن حتیاللاغه حتیالرسولورم اینها هم قرآن هم روایات کثیره ارجاع دادن مسئلین و بحرده به عنوان اسمت آنها اونها و علمی جائره که ناس اماما اما اهل سنت از خبر خبرواهد هست خبر خبرواهد زن میاره روشن شد طریقه ما ایم طریقه اونا هست این یک اصطلاحه یه اصطلاح در مستوای خود بحث خبر و بحث اصولی غیر اصحاب ما به خاطر جمعیات اجتماعی به خاطر سختی ها به خاطر تقییه جاز مختلف کردن بیشتر رو نسخ اعتماد بکنن رو کتاب ها و تصحیح نسخه بکنن به خلاف اهل سنت که بیشتر روز رو یعنی یه نفر میمود چند تا چال 20 هزار بیس حدیث میگفت مینوشتن غالبه از حفظ میگفتن اینجون نبود که از از این نوشتهی میگفتن این طریقه زن آوره اینم یکی طریقه حدیث راه دوازده هم راهی که مازالی مخالف هست با آمن امم گفتن فه اینم رشد فی خلافه. این اینطور نمیشه ده قبول کرد راهی ده که عامه در این جهاد رفتن،, رفتن یک دقت بکنید یک التفات بعض از ادله تعبدی مثل آیه نعر ابدا رو هم قبول کرد مثلا ما قبول نداریم این یکی دو عامه خیلی از مطالبی که در جوازن هم هست راه حل اوغلایی رفتن برای قبول خبر شفا بعد این حساسشون اینطوری که همش باطل میشه حرفه عامه همش باطل نیز. ما اصرار مشکل حرفای آمه ای اینه یک این دقتها و طرق و رو از سالهای 150 بعد اعمال کردن قبلش اعمال نشده یه استقلاقی که بنده همیشه عرض کردن ما مثلا از زمان ما تا زمان راستود یک ساختمان و طبقه باشه طبقه های اول و دوم و سومش و چارمش از شن و نمک و اینا درست شده مال آمه بنیش از بوتون و آرمه بسیار مهم کرده <تص> نیست چهار تاریخ اما خیلی بود اما اون چهار تاریخ پای خیلی ضعیفه یک آبزی روشون برای همهش هم هست که این امتحان که از مستشرین الان کل روابط آمدهاند زیاد تونسته باشند کل روابط دارند یا آبزی روابطشون برای همه را همیشه انسان ها رو مشکل دارن بالایشون یک زمان کشتن راست قبوله اینطور نیست که همه کلماتشون باطل باشه چیه که امامت رو مطرح کرد امامت هم محدود یک زمان قراره ما داریم. شیعه مثلا ما یک تفکر رو عوض کرد دیگه چرا دو طبقه سرورده کرد که کسا اون طبقهش میخوره کسا طبقه سی میخوره اونا رو اون حساب خودشون با مشکر پس این دو وقت دا وقتم داشت کنیم از نگاه نکنه به این مطلبی که ایشون برد. اطلاع یا که نراشته پی خلافه ایم نداریم لیکن کافی نیست